این داستان هانس آهنی یکی بود یکی نبود زیر گمبد آبی آسمون پادشاهی بود که اطراف قصرش رو جنگل انبوهی پوشانده بود توی اون جنگل حیوانای وحشی زیادی زندگی می کردند. یروز روز پادشاه یکی از شکارچیانش رو فرستاد تا گوزنی شکار بکنه و بعد از کشتنش اون رو به غصر بیاره. شکارچی رفت و دیگه ازش خبری نشد. پادشاه فکر کرد حتما برای شکارچی حادثه رخ داده. برای همین دو شکارچی دیگه فرستاد تا شکارچی اول رو پیدا کنن. اون دو شکارچی رفتن به جنگل و بعد از مدتی از اونها هم خبری نشد بعد از این اتفاق پادشاه به تمام شکارچی های شهر گفت برید تمام گوشه و کنارای جنگل رو بگردین و اون سه تا شکارچی رو پیدا نکردین برنگردین هیچ کدوم از اون شکارچیا و حتی هیچ کدوم از سگهایی که به همراه شکارچیان بود هرگز برنگشتند رد پای هم از اونها نبود بعد از این حادثه دیگه کسی جرأت نمی کرد وارد اون جنگل بشه یا حتی نزدیک جنگل قدم بذاره. به تدریج به نظر می که جنگل ساکت و از موجود زنده خالی شده. هرچند که گاهی صدای اقاب یا شاهینی که از دور پرواز میکرد به گوش می رسید. چند سال گذشت، یه روزی شکارچی خارجی، نزد پادشاه اومد و گفت که مایل به اون جنگل خطرناک و متروک بره و از پادشاه خواست که وسایلی در اختیارش بذاره تا بتونه از اونها استفاده بکنه. اما پادشاه مایل نبود به پیشنهادش روی خوش نشون بده. به شکارچی خارجی گفت: گمان میکنم این جنگل جن زد است. میترسم شما هم بری و به همون سرنوشت دوچار بشید. شکارچی گفت پادشاه من این خطر رو با جون و دل میپذیرم توی زندگی من ترس هیچ معنایی نداره. شکارچی که در تصمیم خودش پا بود با یک سگ شکاری براه افتاد. هنوز توی جنگل راه زیادی رو طی نکرده بود که ناگهان سگش به موجودی وحشی تبدیل شد و راه برگشت رو در پیش گرفت. بعد از طی مسافتی کوتاه آبندی آب اسرارآمیز در برابر اون شکارچی ظاهر شد از وسط آب بند یک بازوی بلند و لختی از آب بیرون اومد و چنگ زد و سگ شکاری رو گرفت و داخل آب غرقش کرد شکارچی وقتی این صحنه رو دید فورا نزونایی برگشت که در حاشیه جنگل مونده بودن و قرار بود بهش کمک کنند. سه نفر از اونها رو با خودش آورد و دستور داد با سطل آب اون آب بند رو خالی کنند. طولی نکشید که آب رو تخلیه کردند و ته آب بند مردی رو پیدا کردند که صورتی وحشت انگیز داشت و بدنی قهوهی رنگ داشت مثل یک آهن زنگ زده بود موهای بلند و از سر و صورتش آویزون بود و تا به زانوهاش می رسید اون سه نفر به دستور شکارچی اون مرد عجیب و غریب رو با تناب بستن و به قصر پادشاه بردن مردم از دیدن این موجود عجیب و خرقه تعجب کرده بودن و می ترسیدن. پادشاه دستور داد اون رو توی قفس آهنی بیرون قصر نگه دارن طبق دستور پادشاه هیچکس حق نداشت در قفس رو باز کنه کلید اون رو هم دادن به پادشاه بعد از اون جنگل امن و امان شد پادشاه یه پسر هشت ساله داشت که همیشه بیرون قصر بازی میکرد یه روز پسر پادشاه با توپ طلایی خودش بازی میکرد و از اون بالا به پایین نگاه میکرد که توپ داخل قفص آهنی افتاد. پسرک بدون اون که ای داشته باشه رفت و نزدیک قفص شد و گفت توپم رو به هم بده. مرد داخل قفص گفت نه توپتو نمیدم. به شرطی توپتو پس میدم که در قفص رو باز کنی. پسرک گفت من حق ندارم در این قفس رو باز کنم پادشاه این کار رو قدرن کرده. پسرک بعد از اینکه اینو گفت از اونجا فرار کرد. روز بعد پسرک دوباره برگشت و توپش رو خواست. مرد گفت در قفس رو باز کن تا توپتو بهت پس بدم. پسرک نپذیرفت و دوباره از اونجا فرار کرد. روز سوم پادشاه برای شکار به جنگل رفته بود پسرک بار دیگه کنار قفس اومد و گفت توپم و پس بده اگرم بخوام در قفسو رو باز کنم کلید ندارم مرد داخل قفس گفت کلید زیر بالش مادرته پیدا کردنش کار مشکلی نیست پسرک خیلی دلش میخواست توپش رو دوباره به چنگ بیاره برای همین وسوسه شد که بره و کلید و پیدا کنه و در قفص رو باز کنه. پسرک این کار را اونقدر با عجله انجام داد که انگشتش زخم شد. وقتی مرد از قفص بیرون اومد توپشو بهش داد و راه فرار رو در پیش گرفت. پسرک در حالی که دنبالش میدوید فریاد میزد، مرد وحشی فرار رکن، صبر کن اگه بری منو تنبیه می‌کنن. مرد وحشی برگشت، اطرافش رو نگاه کرد بعد پسرک رو روی شونه خودش گذاشت و با گام بلند به طرف جنگل فرار کرد. وقتی شاه از شکار برگشت دید در قفس باز شده از ملکه درباره اون پرسید. ولی ملکه جواب داد: نمیدونم کلید که زیر بالش من بود. وقتی زیر بالش رو نگاه کرد دید که از کلید خبری نیست بعد پسرشون رو صدا زدن اما هیچ جوابی نشنیدن بعد از اینکه همه جای قصر، حتی تمام زیرزینه و اتاق رو گشتن دیدند که از پسرک خبری نیست و گم شده پادشاه به همه اطراف و اکناف پیغام فرستاد و کوشید که ازش یه خبری به دست بیاره ولی موفق نشد دست آخر حد زدش که پسرش رو اون مرد وحشی رو بوده. اون وقت قصر غرق در اندوه شد. وقتی مرد وحشی وارد جنگل تاریک شد، پسرک رو از روی شانه هاش پایین رو و روی پاهاش گذاشت و گفت تو دیگه هرگز پدر مادرت رو نمی بینی ولی من از تو مراقبت می هرچی باشه تو منو از اون قفس نجات دادی منم از سر ترحم و از سر حق شناسی مراقبت تو خواهم بود اگر از من اطاعت کنی خوشی و آسایش تو تضمین میکنم گنجینه های طلا و مال و مکنت بهت میدم و انقدر طلا و پول بهت میدم که هیچکس توی این دنیا نداشته باشه بعد برای پسرک در میان خزه ها تخت خواب راحتی درست کرد و ازش خواست که شب رو با آسایش بخوابه. صبح روز بعد مرد وحشی پسرک رو به طرف چاهی برد و گفت میبینی چه آب طلایی رنگ و رخشانیه، میبینی چقدر شفافه؟ تو باید اینجا بشینی و مراقب باشی که چیزی توش نیافته. در غیر این صورت شفافیت و زلالیش رو از دست میده. گروب که شد برمیگردم و ببینم چقدر دستوراتم انجام دادی. پسرک لبه چاه نشست. دید که ماهیا و مارهای طلایی رنگ زیادی داخل آب چاه شناور هستند مواظب بود که چیزی ته چاه نیفته. در حین مراقبت از چاه انگشتش درد گرفت و دردش هی شدید و شدید تر شد. اونقدر که مجبور شد برای تسکین دردش انگشتش رو داخل آب فرو ببره وقتی انگشتش رو از آب بیرون کشید دید لایه از طلا دور انگشتش رو پوشونده. او با زحمت زیاد سعی کرد که پوسته طلا رو از انگشتش باز کنه ولی بیفایده بود وقتی شب شد و مردی که اسمش هانس آهنی بود برگشت از پسرک پرسید خب اوزا احوال چاه چطوره؟ پسرک در حالی که انگشت خودش رو پنهان میکرد گفت هیچ خبری نبود. هانس آهنی گفت ولی تو انگشت خودش رو توی آب فرو کردی. این بار ایرادی نداره ولی دفعه بعد موازه باش چیزی داخل آب نیفته. دستت رو هم توی آب فرو نکن. پسرک روز بعد صبح زود سر چاه رفت تا ازش مراقبت کنه. دوباره انگشتش درد گرفت و نتونست دردش رو تحمل بکنه. برای همین انگشتش رو بالای سرش برد ولی از شانس بدش یه تار موی پسرک افتاد توی آب. اونم فوری دلش شد که اونو از آب برداره ولی این بار هم ای از طلا دور انگشتش رو پوشوند. شب که شد هانس آهنی اومد اون که از قبل میدونست چه اتفاقی افتاده گفت توی تار موت توی آب افتاده درسته؟ یه بار دیگه بهت مهلت میدم اگر این کار دوباره تکرار بشه دیگه نمیتونی با من باشی سومین روز پسرک رفت و کنار چاه نشست دستش درد می کرد ولی تکونش نداد تا مبادا اتفاق بدی نیفته زمان به نظرش خیلی دیر میگذشت سعی کرد با تماشای آب خودش رو سرگرم کنه و متوجه گذشته زمان نشه. همینطور که سرش رو خم کرده بود و سطح آب رو نگاه می کرد، تصویر خودش رو دید. برای اینکه بتونه تصویرش رو واضح تر ببینه، سرش رو بیشتر خم کرد. اما وقتی داشت این کار رو می کرد، موهای بلندش جلوی صورتش ریخت و انتهاش افتاد توی آب. اون تلاش کرد که سرش رو زود به حالت اول برگردونه ولی دیگه دیر شده بود. موهاش به یک موهای های تلایی درخشان تبدیل شده بودن. پسرک از ترس و دلهوره داشت دق کرد. دستمالش رو در ورد و دور سرش پیچود و به این امید بود که هانس آهنی متوجه موه طلایش نشه ولی قافل از اینکه اون همه چیز رو می دونست. هانس آهنی از راه که رسید گفت دستمالت رو از سرت باز کن. پسرک دستمال رو باز کرد و موی بلند طلاییش روی شونش افتاد. معذرت خواست ولی دیگه مذرعت خواهی سودی نداشت. هانس آهنی گفت تو نتونستی مراحل امتحان رو پشت سر بذاری. باید با پای خودت به سفر بری و فقر رو تجربه کنی. اگه خوش قلب و درست کار باشی و نسبت به من احساس خوبی داشته باشی هر موقع که منو بخوای به کمکت میام اگر به دردسر بزرگی افتادی بیا کنار جنگل و منو فریاد بزن بگو هانس آهنی اون وقت من بدون درنگ خودم خودمو بهت میرسونم قدرت من زیاده زیادتر از اونچه که فکرشو بکنی طلا و نقره هم فراوون در اختیار دارم پسر پادشاه بعد از شنیدن سخن‌های هانس آهنی از جنگل رفت و مسافرت خودش رو آغاز کرد. رفت و رفت. از جاده‌های ناهموار و کوه‌ها و راههای ناپیموده گذر کرد. بعد از مدتی طولانی به یک شهر بزرگ رسید. توی اون شهر دنبال کار گشت. ولی چون حرفه‌ای بلد نبود کسی بهش کار نمیداد. دست آخر به قصر پادشاه رفت و از اهالی قصر خواست که بهش اجازه ورود بدن. اونا نمیدونستند چه کاری بهش محول کنن که مناسبش باشه. ولی چون سیمای خوشی داشت اونو وارد قصر کردن که همونجا بمونه. آشپس با دیدنش گفت به درد کار پادویاش بس خونه میخوره. میتونه هیزم بشکنه، آب از چاه بکشه و خاک سرای اجاق رو جمع کنه. بعد از مدتی که توی آشپزخانه کار کرد، آشپز اونو به عنوان پیشخدمت نزد پادشاه فرستاد تا کنار میز غذا از پادشاه پذیرایی بکنه. اون به اقامتگاه پادشاه رفت برای اینکه موی طلایی خودش رو پنهان کنه، کلاهش رو از سرش بر نداشت. این موضوع نظر پادشاه رو جلب کرد. برای همین بهش گفت وقتی کنار میز پادشاه حاضر میشی، باید کلاهت رو از سرت برداری. پسرک جواب داد، پادشاه ها، نمیتونم چون سرم زخمه. پادشاه از شنیدن این جواب خیلی براش شد. به دنبال آشپز فرستاد و بهش ناسزا گفتش که چطور جرئت کردی جوانی رو که سرش زخمه برای خدمت من بفرستی. بعد هم دستور داد زود اونو اخراج کنن. آشپس دلش سوخت و اخراجش نکرد اونا نزد باغبان فرستاد تا پادویی باغبان را به عهته بگیره در این کار جدید اون باید ها را بیل میزد خاکها رو زیر رو میکرد بذر میپاشید درخت میکاشت و باغ و باغچه از نور شدید خورشید و باد و بارون و طوفان حفظ میکرد یکی از روزای تابستون که پسرک توی باغچه مشغول کار بود، هوا اونقدر گرم شده بود که طاقت نیاورد. کلاه رو از سرش برداشت و به کارش ادامه داد. این زمان بودش که نور خورشید تابیده به موهای طلاییش به اتاق شاهزاده خانم افتاد. درخشش شدید نور نظر شاهزاده خانم رو جلب کرد. از پنجره به اطراف نگاه کرد تا ببینه که این بازتاب نور از کجا به وجود اومده با تعجب دید که نور از سر کارگر باغبونی میتابه که در باغچه مشغول کاره بهش دستور داد که یه دسته گل براش آماده بکنه و به اتاقش بیاره پسرک با عجله کلاه رو سرش گذاشت و از بین زیبا ترین گلهای وحشی تعدادی را انتخاب کردش و یک دستگل زیبا برای شاهزاده خانم درست کرد. وقتی داشت از پله ها بالا می رفت باقبون دید و بهش گفت این چه دستگلیه که برای شاهزاده خانم می بر از اون گلهای کمیاب و زیبای باغچه براش بکن. شاگرد باغبون گفت که گلهای وحشی بهتره، و شاهزاده خانم رو بیشتر خوشحال میکنه وقتی وارد اتاق شد، شاهزاده خانم بهش گفت کلاهت رو بردار. تو هنوز یاد نگرفتی که در برابر شاهزاده خانم چه رفتاری باید داشته باشی. جواب داد: من جرئت ندارم، خواهش میکنم چنین چیزی رو ازم نخواین. شاهزاده خانم بدون اینکه کلمه به زبونش بیاره، بلند شد و به طرفش رفت و کلاه رو از سرش برداشت. با این کار موی زیبا و کم نظیر اون روی شونش افتاد پادو دلش میخواست از اونجا فرار کنه ولی شهستاد خانوم بازوشو گرفت و مشتی سکه بهش داد اون از شهستاد خانوم تشکر کرد ولی به پول اهمیتی نمیداد وقتی از قصد بیرون میآمد باقبون رو دید که بهش گفت این سکه ها رو بردار من نیازی به اونها ندارم اونا رو بده به بچه تا با اونا بازی کنند روز دیگر دوباره شاهزاده خانم از اش خواست تا دسته گلی براش ببره. وقتی وارد اتاق شد، شاهزاده خانم تلاش کرد که کلاه رو از سرش برداره. اون دو دستی و محکم کلاهش رو نگه داشت و مانع این کار شد. شاهزاده خانم دوباره بهش مشت سکه داد. این بار نیز اون سکه ها رو به بچه های باقبون بخشید. همین اتفاق روز سوم سو هم تکرار شد. او برای شاهزاده خانم یه دسته گل برد. شاهزاده خانم سعی کرد کلاه را از سرش برداره ولی موفق نشد این بار اون از دریافت پول خودداری کرد یه مدت بعد بین کشور این پادشاه و کشور همجوار جنگی در گرفت پادشاه لشگری بزرگ فراهم کرد و آماده جنگ شد ولی از قدرت نظامی دشمن خبر نداشت و نمیدونست تعداد جنگجویای دشمن دو برابر سپاه خودشه. با شروع جنگ شاگرد باغبون گفت: من حالا دیگه بزرگ شدم. اگه به من اسبی بدن، به جبهه میرم. سربازها بهش خندیدن و گفتن وقتی ما به جبهه رفتیم تو به استبل برو یه اسب برای سرگرمیت میذاریم اونجا. وقتی همه به جبهه رفتن، او به استابل رفت. همونطور که قول داده بودند، یه اسب گذاشته بودند. چه اسبی! پاش فلج بود و در موقع راه رفتن میلنگید. اون سوار اسب شد و به طرف مرزهای جنگلی حرکت کرد که هانس آهنی در اونجا ساکن بود. وقتی به جنگل رسید، سه بار با صدای بلند فریاد زد: هانس آهنی! هانس آهنی! هانس آهنی! صدای اون بین درختا پیچید. چند لحظه نگذشته بود که مرد وحشی ظاهر شد و پرسید: چه آرزویی داری؟ جواب داد: به یک اسب قدرتمند نیاز دارم که باهاش به جبهه برم. هانس آهنی گفت: اسب قوی و هر چیز دیگه‌ای که بخوای در اختیارت میذارم. مرد وحشی بعد از گفتن این جمله ها به جنگل برگشت. چند لحظه بعد اسبی با پاهای کشیده و بسیار زیبا شیه کنان به طرف پسرک اومد. پشت سرش عدهای جنگجو با لباسای نظامی و زره های فلزی ظاهر شدند که شمشیرهاشون زیر نور خورشید میدرخشید. اونا اومده بودن تا به جوان ملحق بشن. جوان اسب لنگ رو موقتا رها کرد. سوار برون اسب زیبا شد و پیشا پیش لشکریان به حرکت در اومد. وقتی وارد میدون جنگ شد تعداد زیادی از سربازای پادشاه رو دید که در حمله دشمن از پا در اومده بودن. اون تعدادی که باقی مونده بودن اون چنان ضعیف بودن که یارای حمله کردن نداشتند. جوان پهلوان ما با لشکریان زره وارد میدون شد. بیدرنگ یورش خودش را آغاز کرد. و مقاومت دشمن رو در هم شکست. باقی مونده لشگر دشمن هم پا به فرار گذاشتن. ولی سربازش امون ندادن. اونا رو تعقیب کردند. اون به جای اینکه نزد پادشاه بره و به خاطر پیروزی ازش تقاضای پاداش بکنه، به جنگل برگشت و هانس آهنی رو صدا زد. هانس آهنی اومد و پرسید: "چه کاری ازم برمیاد تا برات انجام بدم؟" جوان گفت: اسب و سروازات و پس بگیر همون اسب لنگون رو به من پس بده. هانس چنین کرد و جوان سوار بر اسب لنگان به خوناش برگشت. وقتی پادشاه به قصر برگشت دخترش به استقبالش اومد و پیروزی رو بهش تبریک گفت. پادشاه گفت: این پیروزی از آن من نبود. ما این پیروزی رو مدیون پهلوان غریبه‌ای هستیم که با سربازان زرهپوشش به کمکمون اومد. پادشاه پرسید: اون قهرمان غریبه چه کسیه؟ پادشاه نام و نشان مشخصی نداشت که به دخترش بده، ولی براش توضیح داد که اون پهلوان غریبه با سربازاش دشمن در حال گریز رو تعقیب کرد و دیگه ازش خبری نشد. شاهزاده خانم همون موقع از باقبان سراغ شاگردش رو گرفت باقبان با خنده گفت اون در این مدت نبود با یه اسب لنگون رفتش و با همون اسبم برگشت خدمتکارا سر به سرش گذاشتن اونو دست می و می اینم پله ما پنبه که از جنگ برگشته خدمتکارا اونو سینجیم کردن و ازش پرسیدن چه سنگرهایی رو فتح کرده اونم جوابهای عجیب و غریبی داد و گفت که از همه بهتر جنگیده و بدون اون پیروزی نصیب پادشاه نمیشد. شد. خدمتکارا با شنیدن این حرفا بیشتر می و اونو دست می انداختن. چند روز بعد پادشاه به دخترش گفت که قصد داره به میمنت این پیروزی سه شبانه روز جشن بگیره. اون از دخترش خواست که یک سیب تلایی رو به طرف مهمونا پرتاب کنه. شاید اون سلخشوری که در جنگ بهش کمک کرده بین اونا باشه و سیب رو بگیره وقتی دعوتنامه برای مهمونا ها شد شاگرد باغمون نزد هانس آنهانی رفت اون بهش گفت چه کاری میتونم برات انجام بدم جوان گفت دلم میخواد خوششانسی من توی این مهمونی ثابت بشه و سیبی که شاهزاده خانم پرت میکنه به چنگ من بیفته هانس آنهانی جواب داد اطمینان کامل داشته باش که سیب نصیب تو میشه تو با لباس نظامی سرخ رنگ و با زره و اسب وارد مهمانی میشی روز موعود فرا رسید جوان با لباسی فاخر و یک اسب سیاه وارد مهمانی شد و بدون اون که شناخته بشه خیلی زود با مهمونای دیگه شروع به خوشو بش کرد وقتی سرگرمی های جشن شروع شد، شاهزاده خانم سیب طلایی رو بین مهمونا پرتاب کرد. سیب نصیب همان پهلوانی شد که با لباس سرخ نظامی و اسب سیاه رنگ وارد جشن شده بود. او بدون درنگ از جمع مهمانان بیرون رفت. در دومین روز جشن، هانس آهنی برای جوان لباسی سفید با زره و اسب سفید فراهم کرد. اون دوباره سیب طلایی رو ربود و بیدرنگ از اونجا دور شد. پادشاه از این موضوع عصبانی شد و گفت هر سیب تلایی نصیبش بشه نباید زودتر از مهمونای دیگه جشن رو ترک کنه. باید بمونه و خودش رو به من معرفی کنه. پادشاه دستور داد اگر بار دیگه سیب تلایی نصیب این پهلوان غریبه شد، و خواست با عجله مهمونی رو ترک بکنه باید اونو تقیب کنند و به قصد برش گردونن اگرم مقاومت کرد به زور متوسط بشن در روز سوم جشن پهلوان جوان با لباس و زرهی مشکی و اسبی سیاه و با شکوه که حانس آهنی براش فراهم کرده بود وارد شد این بار نیز سیب تلایی نصیبه شد وقتی میخواست فرار کنه افراد پادشاه اونو تعقیب کردند، ولی مگه ممکن بود بهش برسند؟ با این حال یکی از افراد پادشاه تونست اونقدر بهش نزدیک بشه که با نوک شمشیر زانوی جوان رو زخمی کنه. جوان پهلوان کمی زخمی شد ولی همیتی نداد چون اسبش به سرعت باد حرکت میکرد کلاخودش رو از سرش افتاد و همه موی تلاییش روی شانش ریخت. افراد پادشاه برگشتن قصر و اون که دیده بودن برای پادشاه تعریف کردند. روز بعد که شاهزه خانم از باغبون پرسید شاگردش کجاست باغبون جواب داد امروز مشغول کار باقبونیه. عجیبه که سه روز گذشته یعنی در روزای جشن قایب بود دیشب برگشت، سه تا سیب تلایی آورد به بچه های من داد و گفت این سیبارو تو مسابقه برنده شده وقتی این گزارش به گوش پادشاه رسید از جوون خواست که بره پلوش پادوی باغبان هم طبق معمول کلاه بر سرش گذاشت و نزد پادشاه رفت شاهزاده خانم همراه پادشاه بود و به زور کلاه جوان را از سرش برداشت. به این ترتیب موهای طلایی جوان روی شونه ریخت و همه از این همه زیبایی تعجب کردند. پادشاه ازش پرسید: «آیا تو همون قهرمانی هستی که هر شب با یک لباس و یک زره متفاوت وارد جشن میشد و بعد از رو بودن سیب طلایی می‌گریخت؟» اون جواب داد: «بله، این هم سیب ها. بعد سیپ ها را از جیب درآورد و به پادشاه داد و بعد ادامه داد اگر مدارک و شواهد بیشتری میخواین میتونم پام رو که در اثر اصابت شمشیر یکی از افراد شما زخمی شده نشونتون بدم. در زمین من همون پهلوانی هستم که در میدان نبرد به کمک شما اومدم و دشمن رو شکست دادم. پادشاه گفت اگه تو میتونی به چنین کارهای مهمی دست بزنی؟ و موفق بشی نباید یه شاگرد باقبون باشی پدرت کیه؟ پهلوان جواب داد پدر من پادشاه قدرتمندیه من به اندازه کافی پول نیز در اختیار دارم پادشاه گفت من اونقدر مدیون تو هستم که سپاسگزاری برای جبران اون کافی نیست آیا میتونم کاری برات انجام بدم تا دین خودم رو ادا کرده باشم؟ پهلوان جوانم گفت اجازه بدین دخترتون همسر من بشه دختر جوان از شنیدن این پیشنهاد خندید و گفت من که مخالفتی ندارم چون از ها پیش به خاطر موهای می دونستم که تو شاگرد باغبون نیستی برای شرکت در مراسم عروسی پدر و مادر جوان پهلوان هم آمدند اونا خوشحال بودند که فرزندشون زنده است چون دیگه هیچ امیدی به اینکه دوباره فرزندشون رو ببینن نداشتند در روز عروسی، در حالی که مراسم جشن و سرور برپا بود، ناگهان موسیقی قطع شد و پادشاهی با شکوه و جلال با همراهانش وارد سالان شد او یک راست نزد داماد رفت، اونو در آغوش گرفت و بوسید و گفت من حانس آهنی هستم زمانی با تلسم یک جادوگر آدم وحشی بودم ولی به کمک تو نجات پیدا کردم حالا برای سپاسگزاری همه گنج گنجهای خودم رو به تومیس برم.